اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوه المدثیر به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ای جامع خواب به خود پیچیده و در بسترارمیده قم فانذیر برخیز و انظار کن و ربک فکبر و پر را بزرگ بشمار و ثیابک فطهر و لباست را پاک کن و رجز فهجر و از پلیدی دوری کن و لا تمنون تستکثیر و منت مگذار و فزونی متلب و ربک فصبر به خاطر پروردگارت شکیبایی کن فاذا فا نقر فينا قور که در سور دمیده شود صدالك يومئذ يوم عسیر آن روز روز سختی است على الكافرين غير يسير و برای کافران آسان نیست درنی و من خلقت مرا با کسی که او را خود به تنهایی آفریده واگذار و جعلت لهو مالم همون کس که برای او مال گستردهای قرار دادم و بنین شهودا و فرزندانی که هموار نزد او هستند و مهدت لهو تمهیده و وسایل زندگی را از هر نظر برای وی فراهم ساختم ثم ان باز هم تمع دارد که بر او بیفزایم این انه عنیدا هرگز نخواهد شد چرا که او نسبت به آیات ما دشمنی می سارهقه صعودا و بزودی او را مجبور می کنم که از قله زندگی بالا رود. سپس او را به زیر می افکنم اینهو فکر و قدر او برای مبارزه با قرآن اندیشه کرد و مطلب را آماده ساخت فقطی در. مرگ بر او باد چگونه برای مبارزه با حق مطلب را آماده کرد. ثم قتل قدر باز هم مرگ بر او. چگونه مطلب و نقشه شیطانی خود را آماده نمود. ثم نظر. سپس نگاهی افکند. ثم عبس و بسر. بعد چهره در هم کشید و اجولان دست بکار شد. ثم ادبر و سپس پشت به حق کرد. و تکبر بردید فقال ان هذا الا سحر و سرانجام گفت این قرآن چیزی جز افسون و سهری همچون صهرهای پیشینیان نیست ان هذا الا قول البشر این فقط سخن انسان است نگفتار گفتار خدا اما سقر اما بزودی او را وارد سقر دوزخ می کنم و ما ادرا کما سقر و تو چه میدانی دانی سقر چیست؟ لا تبقی ولا تذر آتشیست که نه چیزی را باقی میگذارد و نه چیزی را رها می سازد لوحه للبشر. پوست تن را به کلی دگرگون می کند علیه عشر نوزده نفر از فرشتگان عذاب آن گمارده شده اند وما جعلنا اصحاب النار إلا و وما جعلنا عدتهم ما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانه ولا يرتاب ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم برضو والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كَذَلِكَ يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إِلَّا هو وما هي إلا ذكرى للبشر معموران دوزخ را فقط فرشتگان عذاب قرار دادیم و تعداد آنها را جز برای آزمایش کافران معین نکردیم تا اهل کتاب یهود و نسارا یقین پیدا کنند و بر ایمان مؤمنان بیف و اهل کتاب و مؤمنان در حقانیت این کتاب آسمانی تردید به خود راه ندهند و بیماردلان و کافران بگویند خدا از این توصیف چه منظوری دارد، آری، این گونه خداوند هر کس را بخواهد گمراه میسازد و هر کس را بخواهد هدایت میکند و لشکریان پروردگارت را جز او کسی نمی داند، و این جز هشدار و تذکری برای انسانها نیست، کلا <تصفيق> والقمر این نیست سوگند به ماه و اللیل اذ ادبر و به شب هنگامی که دامن برچیند و پشت کند و صبح اذا اسفر و به صبح هنگامی که چهره بگشاید این اینها لائحد الکبر که آن حوادث هولناک قیامت از مسائل مهم است ندیره للبشر هشدار و انذاری است برای همه انسان ها لیمن برای کسانی از شما که میخواهند پیش افتند یا عقب بمانند کل نفس بما آری هر کس در گرو خویش است مگر اصحاب یمین که نامه اعمالشان را به نشانه ایمان و تقوایشان به دست راستشان میدهند. دهند في آنها در باغهای بهشتند و سؤال می کنند عن از مجرمان ما سلككم في سقر تشیذ شما را به دوزخ وارد ساخت. قالوا لم نك من المصليين میگوین ما از نمازگزاران نبودیم. ولم نكن نطعم المسكين و اطعام مستمند نمیکردیم. و كنا نخوض مع الخائضين ما پیوسته با اهل باطل هم نشین و هم صدا بودیم و همواره روز جزا را انکار می کردیم زمانی تا زمانی که مرگ ما فرا رسید فما تنفعهم شفاعه الشافعين از این رو شفاعت شفاعت کنندگان به حال آنها سودی نمیبخشد. فما لهم عن التذكره چرا آنها از تذکر روی گردانند گانهم حمر مستنفره کوی غور خرانی رمیده اند سرت من قسوره که از مقابل شیری فرار کرده اند بل يريد كل امرئ منهم ان يبدا صحفا منشره هر کدام از آنها انتظار دارد نامه جداغانه ای از سوی خدا برای او فرستاده شود. چون این نیست بلکه آنها از آخرت نمی ترسند چون این نیست آن قرآن یک تذکر و یاد است فمن شاء ذكره هر کس بخواهد از آن پند میگیرد گیرد و ما یذکرون الا ان یشاء الله هو اهل التقوى و اهل المغفره و هیچ کس پند نمیگیرد مگر اینکه خدا بخواهد او اهل تقوا و اهل آمرزش است